اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتا امن الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما يشركون بنام خدا بنده بخشنده مهربان فرمان خدا فرار رسیده است برای آن اجلا نکنید منزه و برتر است خداوند از این که شریک او قائل می شود. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان أنذر ان انذروا انه لا فرشتگان را با روح الهی بفرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند که مردم را انظار کنید و بگویید معبودی جز من نیست بنابراین از مخالفت من بپخیشید خلق السماوات والارض بالحسق تعالا عما عم يشركون آسمان ها و زمین را به حق آفرید و است از این که شریک برای اومی سازند. خلق الانسان من هو خصیم مبین. انسان را از نطفه به ارزش خواهر کرد و سرانجام او موجود فسی و مدافع آشکار از خیشتن گردید. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْئٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بَعْضُهَا قَانْرَ أَفْرِيدْ ذَرَاهِكَ بَرَايَ شَمَاوَ در آنها وَسِيلَةُ فُشْشٍ وَمَنَافِعُ أُخْرَى وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ و در آنها برای شما زینات بشکور و هنگامی که با استراحتگاهشان باز میگردانید و با هنگامی که صافگاهان آنها را به میفرستید و تحمل افقالكم بلد لم تکونوا بالغیه إلا ان ربكم لرؤوف آنها برهاوی سنگین شما را به شهری که جز با مشقت زیاد به آن نمیرسید حمل میکنند چرا که پروردگارتان رعوف و رحیم است والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون همچنین خلين و قاطرها و اولادها را آفرید تا بر آن خال سباب شوید و هم موجه زینت شما باشد و خداوند سایل نقلیه دیگری را می آفریند که شما نمیدانید. دانید الله قصد السبيل ومنها اجمعين. که راه راست را به بندگان نشان دهد. اما بعضی از راهها بی راه است و اگر خدا بخواهد همه شما را هدایت میکند و اللهی انزل من السماء ان لكم منه شرار و منه شجر فيه تسمون. ازاتیس که از آسمان آبی فرستاد که شرب شما از آن است. هن با کیاهان و درختان که حیوانات خود را در آن بچراه میبرید نیز از آن است ینبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والأعماب ومن من كل الثمرات إن في فی ذالک لآیت لقوم يتفكرون. خداوند با آن برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور می رویاند و از همه می بخوا مسلما در این نشانه است برای گروهی که تفکر می کنند و تخقر اللیل و النهار و الشمس و القمر و ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون او شب و روز و خرشید و ماه را مستخر شما ساخت و نیز ستارگان به فرمان او مستخر شما گویند در این نشانه هاییست از عظمت خدا برای گروهی که اقل خود را بهکار میگیرند وماد رأ لکم فی الارض مختلفا لوانه ان في ذلك لاایه لقوم یذکرون الا بر این مخلوقاتی را که در زمین آفریدنیز مسخر فرمان شما صاحب مخلوقاتی با رنگهای مختلف در این نشانه ای است برای گروهی که پند پذیر میشوند وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وتغلفوا الكماوات فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكون او ذات است که دریا را مستخر شما ساخت تا از آن گوش تازه بخورید و وسایل زینتی برای پوشش از آن استخراج نمایید و کشتی ها را می‌بینید که سینه دریا را میشکافند تا شما به تجارت پردازید و از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر نعمت های او را به جا آورید والقی فی الأرض رواسی أن تمید بکم وأنهارا وسبلا لعلمتهتدونو در زمین کوههای ثابت و محکمی افکند تا لزش آن را نسبت به شما بگیرد و نهرها ایجاد کرد و راههای تا هدایت شوید و بالنجم هم یهتدون و عنامات قرار داد و آنها با وسیل ستارکان هدایت می شوند افمن یخلق فمن لا یخلق افلا تذکرون آیا کسی که می آفریند همچون کسی است که نمی آفریند آیا متذکر نمی شوید و این تعود نمت الله لا تخصوها، اینا الله لغفور رحیم. و اگر نامت های خدا را بشمارید، هرگز نمیتوانید آن را احساس کنید. خداوند پند، غفور و رحیم است. و الله یا علم ما تصور نمی کنید، آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌سازید سازید می و الّذین یَدعُونَ مِن دُونِ الله لا يخلقون و هم يخلقون معبودهای را که غیر از خدا می‌خوانند چیزی را خلق نمی‌کنند بلکه خودشان هم مخلوقند. اموات غیر احیائی و ما یشعرون این یا آنها موجودات مرده هستند که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی در چه زمان عبادت کنندگانشان محشور می شوند الهو کم اله فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون معبود شما خداوند یگانه است اما آنها که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان حق را انکار میکند و مستکبرند لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون این لا محب بود مستک خداوند از آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می سازند با خبر است او مستک را و نمیدارند. وایذطیل له مذا زله و بوق قالون از اوول هنگامی که به آنها گفته شود، فرمانکار شما چه نازل کرده است بگویان اینها همان های دروغین پیشینیان است ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا فاء ما روز قیامت بار گناهان خود را طور کامل بردوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی را که خاطر جهل گمراهشان ساختند بدانید آنها بار سنگین بدی بردوش می کشند قد مکر الذین من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فأت الله بنيانهم کسانی که قبل از ایشان بودند نیز از این توطه‌ها داشتند ولی خداوند با فراق شالوده زندگی آنها رفت و آن را از اساس ویران کرد و فغ بر سرشان از بالا فرو ریخت و عذاب الهی از آن جایی که نمی دانستند بسراخ شو ثم يوم القيامة يُخذِيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والس سپس روز قیامت خداوند آنها را رسوا میسازد و میگوید شریکانی که شما برای من ساختید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی میکردید کجا هستند در این هنگام عالمان میگویند رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ یا ظالمین انفسهم فالقوا نعمل من الله عليم بما تعملون همان حال که فرشتگان روحشان را میگیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند در این هنگام آنها تسلیم میشوند میگویند ما کار بدی انجام نمیدادیم آری خداوند به آن چه انجام میدادید آن است ترقولو ابواب خالدین فيها اکنون درهای جهنم وارد شوید در حال که جاودانه در آن خواهید بود چه جای بدی جوی کا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خير للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولذاع الاخره خيف ولنعمه دار المتقين بہنگامی کے بفرہیزگاران گفتا شد فرورگار شما چه نازر کرده است؟ می گفتند خیر و سعادت برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است و سرای آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سراغ پرهیزگاران انا توعدنی یدخلونها تجری من تحتها الانهار اولهم تیها ما کذالک يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ باغهای از بهش جاودان است که همگی بارده آن می شوند نحرها از سیر آن جریان دارد و هرچی را بخواهند در آن هست خداوند پرهیزگاران را به دینکونه موز می دهد الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ای که تقیبین سلام کنتم تعملون همانها که فرشتگان روحشان را میگیرند در حال که پاک و پاکی زند با میگوگند سلام بر شما باد وارد بهش شبیه به خاطر اعمالی که انجام میدادید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 آیا آنها جز این انتظاری دارند که فرشتگان به سراغشان بیایند یا فرمان پروردگار دائر به مجازاتشان فرا رسد آنگاه توبه کنند که توبه آنها در آن زمان بی اثر است آری آنها که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند. خداوند به آنها ستم نکرد ولی آنان به خیش ستم نمودند فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِنْ سرانجام سیئات اعمالشان با آنها رسید و آنچه را استهدا می بر با آنها وارد شد وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حظمنا من دونه من شيء کذالک فعل الذين من قبلهم فالا لو نسول الا البلاغ المبين مشركان گفتند اگر خدا میخواست نه ما و نه پدران ما غیر او را عبادت نمی و چیزی را بدون اجازه او تحریم نمی نمودیم آره آنها که قبلشان بودن نیز همین کارها را انجام دادند بلی آیا پیانبران وظیفهی جز ابلاغ آشکار دارند و لقد بعتنا بی کل امت رسولا انعبدالله و اجتنبالطاغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ما در هر امت رسول فرستادیم في خدای یك اجتناب كنيد خداوند گروه راه ناویت کرد و گروه و دامانشان را گرفت پس در روی زمین سیر کنید و ببینید آقمه تکسیب کنندگان چگونه بودند. این تحرق علیه ده هم فاین الله لا یه ذی من یضل ومال هم من ناصرین. هر قدر برهدالجه آنها آه ریس باشی سودی ندارد. چرا که خداوند کسی را که گمراه ساخت هدایت نمیکند و یا نخواهند داشت و اقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا يعلمون آنها معکدن سوگه هم دیاد کردند که خدا آنها را که می میرند هرگز مبعوث نمی کند این وعده قطعی خداست که همه مردگان را به زندگی باز می ولی اکثر مردم نمی دانند لیو رین لهون الذی اختلفون فیه ولی الذین کفند انهم کانون کاذبین حدث این است که آنچه را دران اختلاف داشتند برای آنها روشن ساست تا کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می کفتند انما قولنا لشیع اذا اردناه ان نقول لهو کن فیفون هنگامی که چیزی را اراده می کنیم فقط با آن می گوییم موجود باش، بلا فاصله موجود می شود. و الذين أجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أصب لو كانوا يعلمون آنها که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا هجرت کردند در این دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها می‌دهیم و پاداش آخرت اگر بدانند از آن هم بزرگتر است الّذین نَصَرُوا رَبِّهِمْ آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها توکلشان بر پروردگارشان است وما ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی ایلیم فسانو اهل الذكر این کنتم لا تعلمون ما پیش از تو جز مردانی که به آنها وحیه می کردیم نفرستادیم اگر نمیدانید از مردم با خبر سآل کنید بالبينات والذكر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون الدلائل روشن و کتب و ما این ذکر یعنی قران را برتون نازل کردیم تا آنچه بسوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنیم شاغت اندیشه کنم آف امناللّذين مكوا السّيئاتي أين يختفوا الله بهم الأرض أو يأتيه العذاب من حيث لا يشعرون آيات افتخاران از این زاب ایراقی ایمن کشتمد که ممکن است خدا آنها را در زمین فروبرد تا یا مجاسات از آنجا که انتظارش را ندارند بسراجشان بیاید. او ياخذهم في تقلبهم فذاهم یا يا بهنگامی که در رفت آمدند دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند او ياخذهم على تقون فان ربكم لراؤف الرحيم يا باطور تدریجی با هوشدار حالگی خلفنگیز آنها را گرفت تا چرا که پروردگار رؤوف و رحیم است اولم يرون الى ما خلق الله من شيء يتفنى ظلاله عن اليمين والشمال سجدا وهم داخلون آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه‌هایشان از راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا سجدمی کنند. ولله یسجد ما فی السماوات وما ما فی الأرض من دابة والملائكة وهم لا بهون. تمام آنچه در آسمان‌ها و در زمین از چند بندگان وجود دارد، و همچنین فرشتگان برای خدا سجده میکنند و هیچ تکبری ندارند یخافون ربهم من و یفعلون ما آنها از مخالفت پروردگارشان که حاکم بر آنهاست میترسند و آنچرا ماموریت دارند انجام میدهند. و قال الله لا تتخذون إِلَٰهٌ مِّن ثَنَاءٍ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِنَّا يَفْرُغُونَ وَخُدَاوَنَ فَرْمان دو معبود انتخاب نكنید معبود شما تنها یکی تنها از کیفر من بترسید وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ افغیر الله تستقون آنچه در آسمان ها و زمین است از آن او و همواردین از او می و با آگه غیر از او می ترسید فما من نعمت فمن الله ثم اذا مستکم الظروف ایلیه تجعون آنچه از نعمت ها دارید هم اسناقه‌ی خداست سپر هنگامی که ناراحتی ها با شما میرسد او را میخوانید ثم و هنگامی که ناراحتی و رنج را از شما برطرف ساخت گروهی از شما برای پروردگارش شریک قائل می شود بگذار نعمت هایی را که با آنها دادئیم کفران کنند و چند روزی از این متاع دنیا به حکیرند اما به خواهید دانست و یجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما کنتم آنان برای بطهای که هیچ سود و زیانی از آنها سراغ ندارند سحمی از آن که به آنان روزی داده این قرار میدهند با خدا سوگند از این درو و تخمتها بازپرسی خواهید شد و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم آنها در پندار خود برای خداوند دخترانی قرار می دهند او است از اینکه که فرزندی داشته باشد، ولی برای خودشان آنچه را دارند قائل می شوند و اذا بشیر احدهم بالانتا ضل وجهه مسودا و هو در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند دختری نصیب تو شده صورتش سیاه می شود و مملو از خشم می گذد یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمثفه علاهون ام یدسوه فالتراب الا خود بخاطر بشارت بدی که به او داده شده متواری میگردند آیا او, او را با قبول ننگ نگاه دارد یا در خواب پنهانش کند چه بد حکم می کند لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْمِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم برای آنها که ایمان به سرای آخرت ندارند صفات زشت است و برای خدا صفات است و او عزیز و ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أَجَلٍ مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون و اگر خداوند مردم را خاطر ظلمشان مجازات کند، جنبندهی را بر پشت زمین باقی نخواهد ولی بری آنها را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد، اما هنگامی که اجرشان فرارسد، نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند. وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَتْرَهُونَ وَتَصِبُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ آنها برای خدا چیزهای قرار میدهند که خودشان از آن کراحت دارند یعنی فرسندان دختر با این حال به دروغ میگویند سران جاملی که دارند ناچار برای آنها آتش است و آنها از پیشگامان در آتش دوزخ هستند است. لقد ارسلنا أُرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْخَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خدا پیامبرانی به سوی امتهای پیشازدو فرستاداید اما شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داد و امروز او ولی و سرپرستشان است و مجازات دردناک برای آنهاست وما انزلنا علیک الکتاب إلا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و رحمة لقوم يؤمنون ما قرآن را بر نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف دارند برای آن خواب بیان کنیم و ماگۀ هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان دارند والله انزلنا من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لایه لقوم يسمعون خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین را بعد از آنکه مرداب بود حیات بخشید در این نشانه ی ربانی است گوش شنوایی دارند و ان لکم فیل انعام مما فی بین و دم لبن خالصا ايضا برای شمال درس های عبرتی است از درون شکم آنها از میان غذاهای حضم شده و خون شیر خالص و گوارا به شما مینوشانی و من ثمغات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا این بی ذالک لآیتا لقوم يعقلون و از میبه های درختان نخل و انگور، شراب نشآور و روزی خوب و پاکیزه میگیرید در این دوکشنیه ایست برای قومی که اندیشه میکنند و اوحا ربک ایلن نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما تو بزنبور اصل وحی یعنی الهام غریزی فرستاد که از کوها و درختان و از چیله هایی که مردم می سازند خانه های برکسی ثم قلی من کلی سمرات فسلو کی سبل ربک یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فه شفاء للناس إن فی ذلك لآیة لقوم یتفكرون سپس از تمام ثمرات تناول كن و راههایی را که پرورکارت برای تو تعیین کرده براهتی بپیماد از درون شکم آنها نوشیدنی خاصی خارج می شود. رنگ های مختلف که در آن شفاک مردم است، در این امر نشانه روشنی است برای قومی که اهل فکرند. والله ثم و من کم من یردو الى ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئه این الله علیم قدیر خدافند شما را آفرید سپس شما را می بعضی از شما به سنین بالاگ آمر میرسند و تا که بعد از علم و آگاهی چیز نخواهند دانست خدافند أولهم بم... بقوة با... رفت والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براجة رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون خداوند بعضی شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد، اما آنها که برتری داده شده اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی مسابی کردند، آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات اف بالفاق يؤمنون وبما الله هم يثقون بخداون براي شما از جنس خودتان همسران قرار داد و برای شما از همسرانتان فرزندان و نبه ها و از طیبات به شما روزی داد او یا به با باطل ایمان میآورند و نعمت خدا را انکار می کنند و یعبدون من دون الله ما لا يملک لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون آنها غیر از خدا موجوداتی را می‌پرستند که مالک روزی آنها از آسمان‌ها و زمین نیستند و تاوانایی بر این کار را ندارند. بَلَ تَصْرِفُونَ لِلَّهِ خدا امثال و شبیه قائل نشید چرا که خدا می‌داند بل شما نمیتانید ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على جيء ومن وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون خداوند مثالی زده برزۀ مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان با ایمانی را که رزق نیکو به او بخشیده است و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده انفاق می کند آیا این دو نفر یکسانند شاف خدا را برای اکثر آنها ها نمی دانند وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَرْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلَرٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لاَ يَثْبِتُ خُطَاهُ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ و خداوند مثالی زده است دو نفر را که یکی از آن دو گنگ مادر زاد است و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می باشد او را به سراغ هر کاری بفرستد عمل خوبی انجام نمی دهد آیا چنین انسانی با کسی که امر به عدل با داد و داد می کند و بر راه راست قرار دارد و است مر الساعة الا آسمانها و زمین از آن خداست و او همه را می داند و امر قیامت به قدر آسان است درست هم مانند چشم برهم زدن و یاد آن هم نزدیکتر است که خدا بر هر چیزی توانا والله الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا و جعل لكم السمع و الابطار و الافئیدت لعن لكم تشکون شما را از شکم مادران خارج نمود در حال که هیچ نمی دانستی. اما برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را بچه آورید آلمی راوا إلى الطّائر مسافراتِم في جو السّماء إما يمسكُهُنّ إلّا الله إن في ذلك لآياتِ القوّيّ يؤمنون. آیا آنها با پرندگانی که بر فراز آسمان تسخير شدهاند نظر نهفگندند؟ هیچکس جز خدا آنها را نگاه نمی‌کند. در این نشانه‌ها چیست؟ از عظمت و قدرت خدا برای کسانی که ایمان دارند. و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا و جعل لكم من جلود الانعام بيوت و جعل لكم من الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنتم ويوم يوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أتافا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أتافا ومتاع و خدا برای شما از خانه محل سکونت و آرامش قرار داد و از پوس چهار پایان نیز برای شما خانه های قرار داد که در اسنای کوچ کردن و روز اقامتتان به آسانی می توانید آنها را جابجا کنید و از پشم و کرک و موی آنها اساس و متا تا زمان معینی قرار داد والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراديل تقيكم کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ خداوند از آنچه آفریده سایه های برای شما قرار داده و از کوها پناهگاه های و برای شما پیراهنهای آفریده که شما را از گرما و سرما حفظ می کند و پیراهنهای که حافظ شما به هنگام جنگ است اینگونه هایش را بر شما کامل می کند تا تسلیم فرمان او شوید فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ با این همه اگر روی برتابند نگران مباش تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری یا عریفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون اره نعمت خدا را میشناختند سپس را این کار میکنند و اکثرشان کافرند. وَيَوْمَ نُرَاکُمْ كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ بخاطر بیاورید روزی را که از هر امتی گواهی بر آنها مبوس میکند پس با کافران اجازه سخن گفتن دادن نمی شود و نه هم توبه شانی و زیرفته می شود و ایدارا الذین ظلمون فلا يخفف عنهم ولا هم هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند نه به آنها تخفیف داده می شود و نه مهلت.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 و هنگامی که مشرکان معبودهای را که شریک خدا قرار دادند می بینند پروردگارا اینها شریکانی اند که ما بجای تو آنها را میخواندیم در این هنگام معبودان به آنها می‌گویند شما دروغگو هستید وَأَلْقَوْ إِلَى يَوْمَ و ضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون. و در آن روز همگی در پیشگاه خدا اظهار تسلیم می کنند و تمام آنچه را دروغ می بستند گم و نابود می شود آن آنها که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند عذابی بر عذابشان بخاطر فسادی که می‌کردند می‌افتادگی و يومنا بعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى و, و بیاد آورید روزی را که هر امت گواهی از خودشان بر آنها مبعوث می و تو را آنها قرار می و ما این کتاب آسمانی را بر تنازل کردیم که بیانگر چیز است و موجه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خدابان فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان می‌دهد و از فحشاء و منکر و ظلم و ستم نهی میکند خدافاند به شما اندرز میدهد شاگت پاند وزیر شدید و اوفو به عهد الله اذا عادتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله عليكم کفیلا این اللہ یعلم ما تفعلون هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید و سوگندهایتان را بعد از تاکید نشکنید در حالی که خدا را کفیل و زامن بر سوگند خود قرار داده اید خداوند از آنچه چه انجام میدهید آگاه ولا تكونوا كالتي نقضت قلها من بعض قوة أن كأن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أممة هي أربى من أمم انما يبرؤكم الله به ولا يبغي لنا لكم يوما القيامه ما كنتم فيه تختلفون ومانند زن مبشید کرشته خود را بعد از تابیدن آن میگسست و وا میتابی و به این ترتیب سفگند هاگ خود را در میام خیش بهانه برای فریفکاری ها قرار دهیم به این گونه گروهی از گروه دیگر سبقت حقیقت این است که خداوند شما را به این چیزها می آسمال کرد و تا برای شما در روز قیامت چیزهایی را که در مورد آن اختلاف داشتید روشن سازد ولو شاء الله لجعلكُم أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل عما كنتم تعملون بأجر خداء ميخاس شما را أمة واحدة ولیکن هر کی را بخواهد گمراه می کند و هرکی را بخواهد رهیات میگرداند و البته در برابر اعمال خود مورد سوال قرار داده می شوید و لا تستخذو دخلا بینکم فتذل قدم بعد ثبوتها و السوء بما صددتم عن سبیل الله و عذاب خود را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید مبادا گام هاوی ثابت متزلزل گردد با و بخاطر بازداشتن مردم از که خدا آثار سوی آن را بچشید و برای شما اصاب عظیم خواهد بود وَلَا تَشْتَغُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تعلمون. هرگز پیمان الهی را با بهای های کم مبادله نکنید نزد خدا برای شما بهتر است اگر بدارید ما عندکم ینفد و عند الله باق ولن ایدینن الذین صبرون اجرون بی احسن ما کنون یعملون آنچنست شما فانی می شود اما آنچنست خداست باقی میمانند و کسانی را که صبر و استقامت پیش کنند و بهترین اعمالشان پاداش خواهیم داد من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه ولن انهم هم ما كانوا يعملون. هر کس عمل صالح کند در حال که مؤمن باشد خواه مرد باشد یا زن، به او حیات پاکیزه می بخشید و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادند خواهید داد فَإِذَا فا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَ عِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هنگامی که قرآن میخانی از شر شیطان متعود شده به خدا پناه پناخبر اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ چرا که او تصدت برکتانی که ایمان دارند، و بر پروردگارشان تبکل می کنند ندارند انما سلطان هو علی الذین يتولونه والذین هم به مشرکون تنها تسلط او بر کسان است که او را به سرپرستی خود برگزیدند و آنها که نسبت به او شرک می‌آورند و اذا بدلنا مکنآیم وال الله علم و بمایون نذل و بل را به آج دیگر تبدیل کنیم و خدا بهتر میزند که حب را نازل کند آرها میگویند تو افترا می بندی اما؟ اکثر آنها حقیقت را نمی‌دانند. قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ربك آمنوا بگو روح القدس از جانب پروردگار است و حق را کرده است تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارت برای عموم مسلمین. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ ما می آنها می این آجات را بشری به او تعلیم می دهد در زبان کسی که اینها را به او نسبت می دهند ول این قرآن زبان عربی آشکار است ان الذین لا یؤمنون الله لا یهدیهم الله ولهم عذاب که ایمان به آیات الهی ندارند خداوند آنها را هدایت نمیکند و برای آنها عذاب درثناكید انما یفتری الكذب الذین لا يؤمنون بآیات الله و هم الكذبون تنها کسانی دروغ میگویند که ایمان به اوجات خدا ندارند و دروغ گویان باقی آنها هستند من کفر بالله من بعد من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم كثانيك بعد الآيمان كافر شواند و جز آنها که تحت فشار واقعی شدند، در حالی که قلبشان آرام با ایمان است. آره،, آره آنها که سینه خود را برای فضیرش کافرگو اند، غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظیم در انتظارشان. ذلك بأنه مستحب الحیاة الدنيا عن الآخرة وان الله لا یهدی القوم الكافرين. این بخاطر آن است که زندگی دنیا و پس را بر آخرت ترجیح دادند و خداوند افراد ایمان و لجوج را هدایت نمیکند اولئیک الذین طبع الله على قلوبهم وأبصارهم و سمعهم و ابصارهم و اولئیک هستند که خدا بر اثر فزونی گناه بر قلب و گوش و چشمانشان مهد نهاده به همین دلیل چیز نمیفهمند و غافلان واقعی آنها جعند لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون وقت أنه عنها در آخرة زيان كارانا ثم إن ربك للذين هاجهوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم مجاهد و صبر و این ربک من بعدها لغفور اما پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از طریب خوردن به با ایمان اند و هجرت کردند و جهاد و استقامت در راک خدا خرج دادند پروردگار تو بعد از انجام این کارها و رحیم است و آنها را مشمول رحمت می صافت. وم تأتی كل نفس تجادل عن نفسهوتوفی لنف مامبهیاد آورید روزی را که هرکس در فکر خویشتن است و به دفاع از با خود برمیخیزد و نتیجۀ اعمال هر کسی بی کم و کاف او داده می شود و به آن نخواهد شد وَبَرَرَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا عَرَضًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَرَادَ قَهَّ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ خداوند برای آنهایی که خفران نعمت می کنند، زده زدند، منطقه آبادی را که ام و آرام و مطمئن بوده و همواره روزیش به وافر وافر از هر مکانی فرا می اما نعمت خدا را کفران کردند، و خداوند به خاطر اعمالی که انجام میدادند دادند، لباس گرسنگی و ترس را در اندامشان پوشانی وقال قضياهم وكل منهم فتكذبوا فاقضهم العذاب وهم ظالمون فيومضى <تصفيق> اخذ آنها بصراغشان آمد اما او را فسیط کردند با ادب الهی آن را فکلون مما رزقتم الله حلالا قیبا واشکرون عمت الله این کنتم ایه و تعبون خوابی چونین از طنچ خدا رو زیتان کرده حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خدا را بجاز آغید اگر او را می انما حرم عليكم الميتة والدم واللحم به فمن غير ولا فإن الله شما گوشت خود مرده خون و گوشت خوک را حرام کرده اند و نیز آنچه با نام غیر خدا ضبح شده باشد چون کسی ناچار شد در صورت که ستم نبرزد و از حد تجاوز نکند پس بیگمان خداوند آمزگار مهربان ولا تقولوا لما تصفوا الانفسكم الكذبا هذا حلال وذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بحر شيء ذيك الزبان شما به درو حکم ان را بیان مگویید این حلال ند و این حرام تا بدین وسیله بر خدا دروغی را افترام کنید. بی گمان کسانی که بر خدا دروغی را افترام می کنند هرگز رستگاه نمی شبهند. بهره کمی در این دنیا نصیبشان می بعض درناقع در انتظاب آنها والا الذي ن وما را که قبلا برای تو شهر بای بر یهود تحریم کرد ما با آنها ستم نکردیم اما آنها به خودشان زار و ستم کردند. ثم <تصفيق> إن ربك الذین عملوا سوء بجهالت ثم تابو من بعد ذلك اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهر اعمال بد انجام دادهاند سپس توبه کردند و در مقام جبران برآمدند پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربان ان اروایی مدل غ بهقاندل للله حیم بهال میون المجرریلی ابراهین بطرحی یق م خدا و خاوی از خربونه انحراف و هرگز از تشرکان نبود. اید سباه و هداه یلطف راضی متقی. او شک قدر نامه او یه خدا او را زیب و برای راست هداویت شکار. و آتینا او در دنیا حسن و این او در آخرت لمنطاقی. وما در دنیا با اوه همت نیکود آدید وعند آخرت اصال حال ثم وما كان للمسرکین سپس با تو وحجه کردیم که اولین ابراهیم را فیروی کنید کسی را قد انحراف برکنار بود بَأْسُ مُشْرِفًا نَبُو إِنَّمَا جُعِلَ السَّلْسُلُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَحَكِيمٌ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَقَعَ شَمْبِ وَمَهْدِيَتْ طَايَ بر کسانی قرار داده شود که در مورد آن اختلاف پرسیدید وفی کمان پرباستگار تو در ایشان در آن چه در آن اختلاف کردند در روز قیامت فیستلم نیکند ادرو الى تبیل رب که بالحکمت والنوعظت الحسنت و جادی الان باللتی هی إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين با حكمت با اندرد نيكو بصوية راكب فربع دابتنا وبا انها كنيكو ترى استدلال پرباستگار تو از هر کسی بهتر می داند چکسان از طریق او گمراه شده اند و چکسان ای هده ایت یاد شده اند و این عاقبتم تعاقبو بمثل ما عاقبتم به و لئن قبضتم له و غیب مقابرین و هرگاه خواستید مجادلات کنید، تنها به مقداری که با شما تتم شده، کی تر و اگر شکی باور دیش کنید، این کار برای شکی باوریان بهتره. و خدرو ما صرک ایلا بالله و لا تحزن عليهم، ولا تفی ضيف من مما يمكون سابقا با صبر تو فقط برای خدا و به با خدا باشد و با بخاطر کار خواجه آنها اندوه مباش و تلخ مشو و از اخواجه آنها در تن قرار مگی. اینا الله مع الذين هم با کسانی تقوید پیش کنان واحبا فاؤنی که نیکو کاران